الانبياء الى المرسلين حبيبنا وحبيب اله العالمين، ابل غاصم المصطفى و محمد الله و الله صلى الله محمد و الله و محمد و على اهل بيت في الطيبين الطاهرين و لا سيما و مقية الله في العردين لعنه الله طائمه اناءا اعضاءهم اجمعين من اللعنه الى, الى قیام يوم الدين تبریک عرض میکنیم ایام رو ایام ماه شعبان رو عیدیش رو نیمه فصل بندگی رو رجب شعبان و رو که به خداوند بیشتر لذت می‌شین مهمانش هستیم ماه خودسازی رسول خدا و پیروانش هست و اینکه در حرم مقدس حضرت معصوم سلام الله علیه است. در محضر سربازان امام زمان الله تعالی فرجه شریف و نایب برحقش هستیم که هستوی, هستوی اون حضرت بری ما رو به عهده گرفتند منصوب شدن توسط همون حضرت و ما ایشون هم هستیم و هم تمدن نوین اسلامی است چیز نشدیم سمت تمندن نویل اسلامی داریم پیش میریم نظاممون ولایت نظام ولایت فقیه هست مقتنی و فقاهت فقاهتی که اساس این نظام هست بر اساس او نظام اداره میشه و بینظیر هست در بین نظامات موجود نظامی استثنایی هست که در رأسش یک فقیه هست نداریم دیگه چه قبلا نداشتیم بعد از مسئولین بعدن هم دیگه همینی که هست هست تغییری تبدیلی روخنه نمیده، ده که توسعه پیدا میکنه کنه تکامل پیدا میکنه کنه تعمیق پیدا میکنه کنه و نظام نهایی بدل میشه اون کسی که این نظام نهایی رو میخواد برپا بکنه همونیست که این نظام رو برپا کرده و به عمرش تشکیل شده ما رهبر فقید و جدید و بودن و هستند مکتب فقیشون هم یکیست هم در اون نام نگاری که اتفاق افتاد در حالا اینجا منشور روحانیت که سال 1367 صادر شد خطاب به روحانیون مراجع مدرسین طلاب ائمه جمعه جماعت که شد منشور روحانیت این جمله میدرخشه که نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گمواره تا گور است من البهد الى این جمله خیلی نکته خودش داره عملا این حکمرانی و حکومت نشون میده که جنبه عملی فق فقی جنبه نظری داره تلاش علمی میشه استنباط علمی میشه فتوای صادر میشه ممکنه به نظریه هم تبدیل بشه، ولی کافی نیست این بعد به عمل رسه انتون با عرف اسلام خودش که اول زیر بنا اعتقادات بعد اخلاقیات و بعد احکامه این سر در طول هم هستن از یکدیگر دیگر خود احکام بود عملی دارند رو و فعلش رو میان محکوم میکنن وحکامی ولی خود همین فرق که بود عملی معرفه دوباره باد. به یک عمل جمعی در بیاد نیاز به حکومت داره تو نجف امام از این مسیر استفاده می کردند که این احکام اگه بخواد از لغویت در بیاد باید اجرا بشه و اجراش هم منوط به حکومت بخش عمده احکام ما نیاز به این نه اجراش حکومت مثل قضاوت مثل هم رو معروف نیاز میکرد عماد مختلفش اگر هیچ روایتی اما نداشته باشیم آیهی هم نداشته باشیم برای اثبات ولایت فقیر همین که این احکام فراوان از تهارت تا دیات نیاز داره اجرا بشه این بدون حکومت نمیشه و حکومت هم دست غیر فقیه باز دوباره باشه نمیشه مثلا دست شاه خوب باشه مثلا با دست فقیه باشه تا تمام احکام اسلام رو صد درصد اجرا بکنه بلا این احکام که برای اجرا هستن فقط برای عقیده، عل اجرای هستا فقه بود عملی است بدون او امکان نداره تازه میگن حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه اونم در برخورد با معضلات موزلات چیزی است که مسائل اصلی جامعه است اجتماعی باشه چه سیاسی و نظامی و فرهنگی همه این ها نیاز به حکومت داره جمله بعدی هم اینه که خود فقه تئوری واقعی و کاملی است مثلا برای مدیریت اومده فقه خل اداره هستش که در خدمت هستیم تئوری واقعی و هم واقعی هم کامل این سال 67 بود که امام کم کم میخواستن از بین ما برند و جای جایگزینشون رحمل دیگری باشه این رو مطرح کرده. وسیعت علمیشون بوده وقت شما میبینید که نظری از توریست این تئوری نیاز به عمل داره که عملش به حکومت خدا شما خود فرقی یه یک نظریه است که هم واقعی است یعنی ذهنی نیست و پاررگشار، و کامل است. هست یعنی همه عباد وجودی انسان رو شامل میشه تمام نیازهاش رو بردرف میکنه و اداره انسان اصلا فن فلسفهش اداره است. اداره انسانه تا تو مدیریت هم که تعریف میکنن میگن مدیریت تعریفش اینه که اداره انسان در سازمان یعنی انسان اداره میشه. تو مدیریت ماشین اداره نمیشه. انسان اداره میشه بعد اون انسان از امکانات بهرمند میشه. به شکل بهینه. تو زرستان فقه اداره انسانه. انسان سرگشته و پر نیاز و پر وان میشه خب این شون وقت کم هست یو اکسلنسین یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد یعنی جامعه مسیحی روتی اومد یعنی مجموعه جهان که یک جامعه همه هم مثل ما که اروپا هست، افریقا هست فرهنگ های مختلف، دین های مختلف مجتحدی که تربیت میشه باید بتونه هدایت کنه یک جامعه رو. از ما, ما از اداره یک کوچه یک مسجد کم میاریم ولی باید قدرت اداره ی جامعه را داشته باشیم علاوه خلوص و تقواه و زهدی که در خور شأن مجتهده واقعا مدیر باشه و مدفه این تو اشتو منشوره مجتهده مدیر آرزوی آیت الله مرحوم یزدی این بود آقا گفتند مجتهد مدیر گفتن یا مجتهدی مدیر نیستیم یا مدیری مجتهد نیستیم بعد از این طرحی ایشون حمایت کرده بودند که حالا تبدیل شده به یه مؤسسه تو منزل ایشون منزل هم مرحوم آیت الله یزدی و هیات آمن داره که رجوع پس مستحیل اسالتان باید مدیر باشه. ملا چه مجتهدی است. مدیر هم باید مجتهد باشه تا از بین اینها یکی اسلح باشه و بلایت فقیه رو اوتو بگیره. مثلا محصول حوزه های علمیه باید مدیران باشند. مدیران جامعه مدیران محلات مدیران روستاها مدیران استان ها مدیران کشور ها حوزه علمیه امام تربیت میکنه که امام یعنی مجتهد مدیر اسم کلمه امام یعنی مجتهد مدیر چون امامت بود مدیریت بریست نبوت و رسالت و اینا هم به امامت که نرسیده پای مدیریت نیست میخواد اداره کنه میشه امام و این امام دو است. امام مجتهد مدیر حوزه های علمیه که شما نمونهاش هستید باید به این سبت بره که خروجی حوزه بیشو مجتهد مدیر مدیر مجتهد این کسی که این نظام ما رو برپا کرد اقامه کرد به دستور منوباً هش این کرد و به اذن او کار کرد زمان نظام کوشت داره یه امام زنده چون ما شعبانه یه امام زنده‌ای که هشتاد و سال زنده هست و این امام این نظام ما رو بر اساس فقاحت تشکیل اینم از این بود که توی اینا زیرسافت های بحث ماست، هست من رحمه ما از در هیجده هیجده دی ماه هزار سی و شست و هشت بودن که دفاع غیورانه امام عزیز عزیز یعنی شکست ناپذیر نه امام دوست داشتنی ولله لعزت ول رسوله ولی هم وقت میگیم عزیز یعنی شکست کسی که مجتهد باشه, باشه، ما که میخوردن یکی این دوتا نبودن یا ها هیدروژن نداشتن یا اکسیژن هاشتو بزاقه او میشه هاشتو مجتهد و مدیرم ببینید ایشون میگن که امام عزیز از مسئله ولایت و رهبری دفاع غیورانه امام از لایت و رهبری ناشی از درک و ایمان امیر و به همین حقیقت بود و امروز این جانب به پیروی از آن بزرگوار با همه وجود و توان از این اصل کدوم اصل رهبری دینی بلایت فر و لوازم آن لازمش چی هست مطلقه بودن صاحب اختیار بودن فرمانده کل قوا بودن کل قوا یعنی چند قوه سه قوه مقننه و مجریه یه قوه هم قوه دفاعیه مثلا باز خود اون پ قوم اون داره و دوله من قبعه. زمینی و هوایی و دریایی و مقاومت و قدس. پنج پ با اونجا سه قوم اینجا میشه فرمانده کل قواه حالا شما بهتر از من آقا رو شاسید زارم به این جمله تصریح هم که من فرمانده کل قوا هستم اینکه یه فقیه تشریفاتی محممی بالا سر نظام باشه احترامش کنند ولی چیزی دستش نباشه؟ نه از این اصل و لوازم آن دفاع خواهم کرد و به کمک الهی به تکلیف خود در همه موارد عمل خواهم خدشه در التزام به ولایت فقیه و طبعیت از رهبری خدشه در کلیت نظام است این جانب این را از هیچ کس و هیچ دسته و گروهی تحمل نخواهم کرد آیا سلاوات داشت نیست؟ یعنی اینکه که اون که امام تو منشور گفت من ملتظم هستم بشه در بیستو شیش هشت پنج هم اینا رو نشون نمیده نه؟ به صورت پاورپونت ما خیلی فنی نیست من شما الاته میتونید مینویسید هم تند خان هستید زیادن هم تند نویس گفتن اینا اینا که دعوت شدن اونجوبه هستن <تصفح> <تصفح> <تصفح> یعنی که نگاه میکنه کنند می در آینده سیستم هایی میاد که اصلا خود به خود شما فکر کنید می نویزده هم نامه نگشوده تند می خونن. حالا این جمعه را ببینید پنج قدری نزدیکه اصول انقلاب همان چیزهاییست که در وسیعتنامه امام و در بیانات امام وجود دارد اینها پایه ها و ستونهای انقلاب هست بخونید نکی نوشت من در پیانات امام تحریف کردیشم در بیانات امام موجود دارد اینها پایه ها و ستون هاست پایه و ستون یعنی هم مبناز هم ستونه یعنی این انقلاب زیر ساختش و اون عمودش امادش این فرمشت امام این همون انفسنا و انفسا کم هستش می گو پیانبر با امام یکی بود می گو خواب خامنه دیگه اتفاقا حروفشونم هم مثل همه اگه کم فرق داره خمین و خامنه تقریبا ایکی اینا ما هم یکی هستند در یکی یک نوود هفت این مکتب فقی اینجا شروع میشه یعنی شما مبانیتون چه پایه پایه است؟ یه هرچی ایشون گفت این بد نیست که بگیم آقا چی ایشون گفت میگه خب ما یکی هستیم که هران تا باشیم من دیدم یکی اومد خدمت امام اصر الله تعالی فرد شریف از این نوعا به واسطه این همیری نامیر اوبرده بود از یه اختلاف فقهی که ما نمیدونیم در بعد از تشهد مخوایم برخزین تکبیر بگیم یا نگیم بعد امام گفتن اج، از انجداد من دو حدیث رسیده نه اخیرا ما تو بحث فقه داره این بررسی برسی یکی گفت چرا خودشون نگفتند. گفتن از انجدادم دو حدیث رسیده یکی میگه و یکی میگه واجب نیست این نشون میده که به هم احترام میذاشتن امام های قبلی سند می‌شدن برای امام بعدی. وقتی اونا گفتن، ما گفتیم، این یک پارچگی خیلی کمک می‌کنه. نور واحد، بله اقتضاعات هم هست. پس ببینید، مکتب فقهی را تو یه جلسه یک ساعته، اونا می‌خواهد اتوبوس آمادت بریم نماز جمعه، ما حرکت هم وقت نمیشه که باید جلسات مستمر رو مداوم و عبادش باشه ولی پس کردم تو این مدت این نکات رو خدمتون بگیم ببینید ایشون در یکی یکی نرده هفت گفتن که شعارهای شعارها و عرضش های اصلی اینهاست استقلال آزادی مردم سالاری اعتماد به نفس ملی خودباوری ملی عدالت من با رنگیش کردم و برتر و بالاتر از همه اینها و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور برتر و بالاتر یعنی فقه باید عمل میشه احکام باید عمل میشه از همه اینها یعنی فقه و مدیریت خیلی شبیه هم هستند دو. فقه هل اداره مدیریت رو میگن علمیست، عملی، املایت اگه اینکه پارسیبان ناراحت نشه، املاید هستش، یعنی عملیست. فرق هم عملیست، مدیریت هم عملیست، هست فرق خود داره دیگه فوق عملی است. یعنی آمده که احکام رو در جامعه پیاده کنه راه. عملی شدن احکام شریعت در جامعه مصادس با فقه و اداره بله احکام چی میشن؟ اگه گفتی؟ ترتیل میشن ترتیل میشن تلابا <تصفيق> هم که تعطیل دوست دارن حتی استادام بیشتر دوست دارن همه تعطیل ترتیل بشه راحت خب این میشه فقه داره بعد ببینین ایشون میگن این شعارها که شیشتا اسم بردن گل سرسبتش شد اجرا احکام اینا ارزش اصلی ماست اجراع احکام و این از مردم سادادی و آزادی و اعتماد به نفس ملیو این از همه اینا بالانتنه این شارژش ممکن تمام بشه این شارژر من دادم به شما آن ما اینا فرضی این احتمالش هست این شوارها این اش برام مهمه این شوارها با همان تراوت تراوت اول حفظ شده است اینو سال 97 میگن هندس چهار سال پیش یعنی فکر نکنید چون چهار سال پیش یعنی چهل سال از انقلاب گذاشته الان چه؟ و چهار ساله ما در سوام اول 1399 قمری انقلاب ما پیروز شد سوام ربیعال اول یعنی پایان قرن 14 و آغاز قرن پانزده که بعد ما این قرن قرن قلب است از قمری حساب شده خب اینم از این جهت که باید احکام اجرا بشن این آقای تئوری فقهی دارن میگن دولت اسلامی این دولت اسلامی چیست؟ ایشون توضیح میدن دولت اسلامی اونیست که دقیق کنید این دولت کریمه اسلامی که کارگزاران این نظام این دولت کارگزارانش و احکام این باید اونها با مهم نیست همین این شارژش باشه این اح... ای که آقا اخیرن اون حلقه های چنگانه رو میگن میگن ما قیام کردیم انقلاب کردیم نظام تشکیل دادیم قیام خرداد انقلاب بهمن نظام فروردین این ستا مهموریت امام خاملی مهموریت امام خاملی ستای بعدی است سه به اضافه سه تقسیم کار او قیام و انقلاب و نظام من چی دولت جامعه تمدن سه به زفر سه به شیش حال در چند گام گام یک گام دو ولی تو این گام ها این مهمه همش فقهیه ببینید مکتب فقهی همه رو ایشون به احکام پیوند میزنه این دولت اسلام اونیست که کارگزارانش کارمندانش کارکنانش همه از صدر تا زید به احکام اسلام اولا معتقدن ثانیا عملی می دونن ثالثا عملی می یه بار بگید دولت اسلام چه است که اینا نره رو دولت اسلام و جامعه اسلام هم همینطور این اصلا تعریف اینها احکام اسلامه فقه دیگه نظام فرقیه. حد میگن جامعه اسلامی چون مردم دینشون دین ملوکه اگر ببینن دولت سبودی شد به احکام یعنی احکام آلا اینجور نیست خیلی مخالفم تازه زنج نه تنها معتقد اسلام یه گام گام معقب هستیم. دو اگرم معتقدن یه عملی نیست میگن قبول داریم ولی کارشناسی که میکنن سنگ اندازی میکنن و نمیذارن منویات فقیه که منویات امام زمان هست پیاده بشه بذار تار و پود دولت اسلامی احکامه تار و پود جامعه اسلامی احکامه دوباره جامعه اسلامی چه جامعه است؟ که مردمش به احکام اسلام حالا معتقد باشن عملی بدونن و عمل هم بکنن مردم دولت دولت و مردم اون موقع میشه جامعه تمدن نوین اسلامی اتومات پیش میاد اتومات شما حساب کنید خیلی رویایی است ولی شدن نیست این دویست نفری که اینجا نشستن اما این رویا رو چکار میکنن ما که دیگه نیستیم شما هستید هر شما هستید این رویای صادقه روز میشه و سادهتر رویا. تا پیامبر وقتی از مکه رو فرد کنه رویا شدید که مل ساده الله شدید، رسول او رویا الحق. لتدخلن المسجد الحرام، ان شاء الله آمنین. محلقین رؤسکم و مغسرین. مینجدون. رویای دولت اسلامی مرغوبه مرغوب اندا نره ابا الهی بعد میگن خیر تعریف میکنند میگن خیل اونیست که یرغبا الهی هلکل همه دنبال شد اصلا بینید مکتب فقهی اینه که اون قیام خورداد اون انقلاب بهمن، اون نظام فروردین، این نیمی از راه بود. نیم دوم دوش سید علی هست که فقیه هست. و این با کنه؟ این باید دولت اسلامی چقدر میگن، چقدر میگن؟ ولی هنوز نشده. خب طلبوها فزلا پرشم رو باید کمک می‌کرد. ولی خوبیش اینه که ایشون چقدر بودن گفتن این شعارها این شعارها یعنی اینکه احکام اسلام اجرا بشه این شعاره. دو یه ارزش شعار و ارزش اجرا احکام یعنی شما میگید استقلال، آزادی، مردم سالاری اعتماد به نفس خیلال، اجراح احکام که الان همشه اتفاقی نیفتاده و ایشون بارها تصریح کردند. یه دوازده، دوازده، یازده، ازار سیساد شست هشت هم یه جمله گفته بودند که اینا مبانیست که بیایم جلو هدف از همه این آفرمشت ها آست، هدف از همه مبارزاتی که ملت ایران به رهبری امام مزرگوار انجام داد تا انقلاب به پیروزی رسید اینه تشکیل حیات اسلامی اسلامیست حیات تهیبه اسلامی اون تمندن از گفته این حیات طیبه روح اون تمدن جسم میشه یا مدینه فازله جسم روحش حیات طیبه است که میگه فلن نحیینه حیات طیبه و کلمه اسلامی هم براش به کار میبرند. پس هدف فقیق و فقه و اینا تو این مکتب امامین حیات طیبه و جالبه که ایشون میگن از اول امام خمینی دنبال این بود که حیات طیبه بیدا بشه حیات طیبه مسابس با دولت اسلام به اضافه جامعه اسلام به اضافه تمدن اسلام مسابس با حیات طیبه اونا که حافظانی آیه رو بخونید تبرک کن گفتم آی از می فعلن نوه ینه من اعمل الصالحات لذا کریں۔ و هو بلن ما اون جامعه رو زنده میکنیم یعنی از خود به خود دیگه وظیفه ما میشه شما مقدمات شما طی کنید فلن این مقدات هم بدون فقه انجام نمیشه بدون احکام چون فقه میاد احکام رو استنباد میکنه احکام هم باید پیاده شه. حالا حضرت فقی هم باید استنباد کنه هم باید اجرا کنه تو بشه مجتهده چی؟ مدیر آرام آرام داریم با این مکتب خون آشنا میشیم بعد امام خمینی به امام خامنهی یه نامهی می نویسند یعنی این جانب از سال‌های قبل از انقلاب با جناب عالی ارتباط نزدیک داشته همون از سال‌های قبل از انقلاب. یه عکس هست دیدید امام خمینی جلو امام خامنهی 23 سالشونه و همون رشادت و رشید بودن و بعد میگه من با شما ارتباط نزدیک داشتم اینکه حالا شما جز طلاب ما بودید و همان ارتباط به حمدلله تعالی تا کنون باقی است جنابالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می‌دونند و شما را چون برادر میدونن برادر خوده جانشی نیست. همکه میگم برادر چون امام به کسی نمیگه برادر. تزدیقشون نصف سند امام بود. برادر. اخی و وسی و وارزی. برادری هستید آشنا به مسائل فقی و متعهد به آن. ببینید دو بعدی شد. آشنا و متعهد. یعنی وقتی خود و آمن الرسول به ما اون زلاله. بعد والمؤمنون مؤمنون کلون آمنه اول دولت اسلامی میشه بعد مؤمنون بعد مؤمنون کلون آمنه کلون یعنی هشتاد میلیون کی وقتی سیستم مؤمنه الان سیستم ما که مؤمن نیست یعنی خیلی غرب زده توشون هست شرب زده توشون هست علم زده توشون هست تا این سیستم بیاد پاکسازی بشه ریکاوری بشه اسلامی بشه به چی میشه به فقه به احکام شاخصه اسلامی شدن احکامه و احکام هم که فقیستن باید میکنه و باید کار اون رو اگه گفتید اجرام بکنه چون مجتهده مدیر مدیره مجتهد این به مسائل فقهی متعهد به آن هستید سه سرم بنویسید از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جدا جالب داریم جده یعنی به جد جود و جهاد و اجتهاد. این فرهنگ مازیان یادداشت بکنی جود و جهاد و اجتهاد. جود یعنی بزلل نفر حال میرسیم که مکتب فقهی آقا مکتب جهاده بعد از با مبانی فقهی مربوط به ملایت مطلقه فقهی مطلقهشم هم هست یعنی مقید به اصل صدنده قانون اساسی نیست یا اون یکی اصل تا بریم بگیم فوق قانون بود فوق قانون چه علامه مثبا گفت که قانون اساسی تنظیم شد بهشتی به تنظیم کرد دادا آ امام امضا کرد. بعد میگن این ای خود این قانون با امضای امام مشروعیت پیدا کرد ایشو میگفتن. من چطور میشه خود این بیاد به تو قانون گیر کنه؟ تو چرخ دنده ها تازه امضای امام ایشو میگفتن. امضای امام تازه باعث شد این قانون چی شد؟ مشروعیت قوانین به فقیه، مشروعیت احکام به به امضای اوست تا او تنفیز نکنه امضا نکنه من چطور میشه او رو برد کجا در لابلای این قوانین خوردش کرد و اون چطور میتونه پدری کنه اون وقت چطور میتونه خود این یه قانونه خود این یه قانونه قانون است. که قوانین مشروعیتشون به چیست به امضای فقیه حالا شما این هم مجلس شورای اسلامی خودش رو تا شورای نگهبان تعیین نکنه که نمیشه. چون شورای نگهبان هم منصوب ایشون این همه راه به فقیه ختم میشه این میشه ولایت مطلقه فقیه بعد دیگر بعد بحثش دوستان است از مبانی فقهی مطلقه جدا جانبداری میکنید و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید روشنی میدهید هست بعد البته یه نامه قبل نوشته شده بود که اونم بدونیم بعد نیست بین امام دو تا اماام چه رابطه ای بود 16۶ و 66 بود که این نام نگاری ها اتفاق افتاد. که امام یه نظری داشتند امام خامنهی تو خطبه های جمعه نظری دادند بعد امام نقدی بر او کردند دیگر چون اینو خیلی زیاد هست همش رو نمیشه خوند بعد گفتند که امام گفتند حکومت از احکام اسلام و مقدم بر همه احکام حکومت این عبارت رو من براتون بیارم اومد که شعبی از ولایت مطلقی رسول الله صلی الله علیه آله و سلم است دقیقا یکی از احکام اولیه اسلام است یک حکمه مسیح یک بول بحاره. بنمه اینا میتونه توضیح بده و این از احکام اولیه اسلام است، و تقدم مقدم بر تمام احکام شرعیه دارد حتی نماز و روزه و حج و ما نودیه به شای که ما ولایه یه هرچی احکام هست گلش حکومته اگه حکومت نباشه یه احکام اولیه است احکام ثانوی نیست بعضی ها ممکنه فکر کنند احکام حکومتی حکم استیسانوی در شرایط استرار این خیلی اموردنش پایین یعنی هم که میته و دم و لحم خزیر فمنستر غیر باغل ولا آدم گرسر میتونه چکار کنه؟ اصراف کنه دیگه میشه استرار آیا ما سه نوع داریم یکی حکم حکومتی یکی حکم اولی یکی حکم ثانوی درست حکم حکومتی کدوم است حکم اولی است شما دو گزینه دارید اولی ثانوی قبول دارید حکومت کدومه ثانوی است یا اولی است امام میگه اولی است اولیست اولی است بلکه اول اولیاته یعنی سایر احکام محکوم به او هستند یعنی چی؟ یعنی اگر اون دقت کنید اگر یک حکمی قابل اجرا نیست یعنی با حکومت نمیخوند حکومت بر او چی میشه؟ حاکم میشه و یه مجمعی تشکیل میشه به نام مجمع تشخیص مسلحت نظام تشخیص مسلحت و مقصدت مقصدتش هم هست اینجا مسلحت ام هست مقصد است. یه تیم تشکیل میشه این تیم کارش چیه؟ هست که نگاه کنه این احکامی که شرای نگهبان نگهبانی کرد و از مجلس اومد و امضا کرد آیا اصلا میشه عمل کرد یا نه اون حکومت از همه احکام اولی سره. درست؟ حکومت دست حاکمه دیگه. حاکم هم با مساله سرکار داره. نه مسلحت و مفسده واقعی بلکه مسلحت اجتماعی. که ضرورت پیش میاد بعد الان میخونیم نظر آقا رو رجوع به تشخیص الان میخونیم که شما مشاور من هستید شما مترسید وقت نشه شما مشاور منید و تشخیص میدید مسلحه رو و سعی کنید وقتی که این مسلحه تموم شد دوباره برگردید به حالت اولیه اختلاف ایشون با استادشون امام سر همین بود که خیلی ها فکر اینا با هم اختلاف دارن اونقدر من اصلاید آوردم که بعد باید به شما حدیه کنیم این رو دیگه خودتون برید مطالعه برید حالی اون لپش اینجا دیگه باید بریم نوازمه نه آه پرسش پاس هم هست ده تا هم فرصت نفر 10 دقیقه. و هر کدوم فقط سوال کنن 10 دقیقه پاس این شنفت نقطه مهمیه تو مکتب فرقی. امام گفتن که این ش... چون ما همامله جمعه من بودم گفتن که ما حکومتی که تشکیل دادیم بر اساس احکام اولی است که ما از اون محدوده خارج نمیشیم بعد امام گفتند که نه حکومت این جواب بود حکومت بر همه احکام اولیه چیست و نظر شما باید قدری اسلام بشه اناخره دو امام هستند بعد ایشون در خاص نوشتن من از قدیم همه حرفا رو قبول دارم جز کلمه مسلمات کلا مسلمات میگن یعنی ما با هم یکی هست اونم که من گفتم حدود شرعیه هست باید مبسوطا یه روزی شرح بدم که حدود شرعی چیست ولی الان ببینیم که این داستان حکومت که از احکام اولی است و مقدم بر چی هست همه احکام اولی است من همه احکام اولی مقدمه هم. که اگر یکی از احکام اجرائی نبود چرا نگهبان زرگا کشید باید یه مجموعه تشخیصی بیاد بگی که اون مسلحت اهم چیست مسلحت اهم چون این مسلحت مهم داریم این مسلحت اهم در تظاهم هر دو مسلحت دارند اینکه یکیش مفسده داره تظاهم هر دو باید اجرا بشن ولی امکان اجرای هر دو با هم نیست خب کدوم اجرا میکنید میگه اونی که مانه حکومت نیست و مانع نظام نیست با حفظ نظام تعارضی تضامی نداشته باشه این تنها جایی بود که این نامنگاری هم اتفاقا تو تاریخ ثبت شد خیلی خواستن سو استفاده کنن یه هفته گذشت من یادم از, از این جمعه تا اون جمعه شیاطین خودشون رو دادند، دادن تست شدن بعد گفتن که ما از اول می دنستیم. از اول می که مثلا رئیس شمپور با امام اختلاف چی دارن بعد که ایشون جواب دادن که من همه رو مبانی شما رو همه رو قبول دارم دیدید هم که ما خوندیم شما گفتن همه شما قبول داریم بعد امام اونجا بود که اون پاسخ دادن که شما آشنا هستید و همونجا دیگه رهبری ایشون کلیت خورد و به سمت جدا آمد البته من یاد خودم یادم هست که حتی های منتظری خطیب جمعه بودن من بودم تهران بودم بعد امام یه مرد چهل ساله ای رو که هنوز دستشان سالم بود سال سالگی سال ایشونو کردن امام جمعه تهران گوتا شما بهتر برید قوم و درس میخونید فقیه باشید مثلا عالی قدر باشید بعد ایشونو که اومدن من همونجا تو ذهنم زد دو سالش 60 بود هنو تا 68 هشت. هشت سال دیگه امام زنده بود من به ذهن اومد که امام جمعه تهران امام حکم میگیره به نام امام جمعه تهران این با در حد رهبری باشه. حالا امام جمعه یا مثلا جای دیگه یا امام جمعه موقت نه امام جمعه تهران حکم بگیره من جو احساس کردم که ما رو برگزیده برای این مقام و اون قائم مقام رو گفتند که ببینید ببینید حالا این جمله امام خامنی رو بخونیم نشتایی که مبنای فقهی حضرت عالی که این جانب سالها پیش آن را از حضرت عالی آموخته و پذیرفته بر اساس آن مرش کرده هم ببینید آمخته دو پذیرفته سه مش کردم یعنی برش این ممشای من هست این روش زندگی من شده بعد مش کردم موارد و احکام مرحوم در نامه حضرت آلی جزء مسلمات است. کدوم بود که حکومت از احکام چی هست اولی هست اونتا ایشون به خطاب به تشخیص میگن که این مسلحتی که تشخیص دادید موقته. موعدش گذشت. که بعد می‌گید به احکام منظورشون این بود تو نماز جمعه که یه استفاده خاصی می‌خواستن به بعد همه را قبول بنده همه آنها را قبول دارند. مقصود از حدود شرعیه در خطبه‌های نماز جمعه است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. یعنی حدود شرعیه که گفتم با احکام اولیه هست، ما نظر شما بود. چون شما چی گفتید؟ گفتید حکومت چی هست؟ اولیه هست. منم گفتم باید ما با احکام چی اولیه هست. بس یکی شده هست. توش اصلا نبود. این از این جهت، که بعد حالا چون شما می به سوالات برسید آقا مکتب فقهیشون چون فقهل اداره چون جایگاه بحث ماست فقهل اداره هست فقهل اداره تعریفش چی هست؟ استنباط احکام تکلیفی و وضعی برای اداره جامعه. اداره انسان است احکام وضعی تو فقه و اداره موضوع میشن برای احکام تکلیفی ما تو فقه و اداره یه حکم وضعی داریم یه حکم تکلیفی حکم وزی هم تو که از اسمش هم معلومه موضوع قرار میگیره برای حکم تکلیفی مثلا شما فرض کنیم کنیم زوجیت یک حکم وضعی است شما با آشناییم این زوجیت یک حکم وضعی است که این اطلاق میشه به این آهاز زوج به این خانم زوجه که اطلاق میشه کی مراحلی مراحلی که مراحلی تی بشه میگه مراحلی تی بشه بعد که مراحل تی شد میگن آزاز زوج من تکلیف تازه پیدا میشه این میشه وجوب تمکین میشه وجوب نفره ها وجوبها... یعنی تا یه حکم وضعی نشه تو مدیریت اتفاقا همش همین داره تا کسی منصبی رو نگیره مثلا برس کنید پشت نگرد که این مدیر آنه. این آقا مدیر هست این آقا رئیس هست، این آقا ولی فقیه هست باید مراحلی رو بگذرونه تا به چی برسه؟ به این منصب بعد میشه حکم وضعی بعد وضعیفی بر دوشش میاد تا کسی اون وضعیت رو احراز نکرده یعنی هنوز مدیر این شرکت نیست مدیر این مدرسه نیست تکلیفی هم رو دوشش نیست. همین که حکم وضعیش این شد که شما رئیس هستید بهش حکم ام هم میدن همین که رئیس شد شرح وضعفی میاد یکی بر خودش یکی بر زیردستانش زیردستان مکلف اطاعت میشن خود او مکلف به چی میشه اجراع وظائفی که رو دوشش میاد مثلا بعد چیکار کنه مثلا فرض کنید نصب کنه ازل کنه،, کنه و همچنین بودجهای رو مصرف کنه درست مصرف کنه این شر وظائف که شما میگید شهر وظائف علم می آقای که این دوره رو اداره میکنن از کی این وظایف رو دوشون هست زمانی که احراز چی میشه منصبشون من سبب شایستگی، اگه کسی شایستگی پیدا کرد حالا شایستگی اخلاقی داریم شایستگی علمی داریم شایستگی مهارتی و مدیریتی داریم اینا رو که داشت تازه میشه چی میشود. صاحب منصب حالا که صاحب منصب شد وظایفی رو دوش او و اطرافیانش میاد اینجاست که ما میگیم حکم وضعی چون این چطور شما میگید حجیت، زوجیت مانعیت، شرطیت اینا هم هست یکی از احکام هم همین خوست ها و مناسب است که به درست میارم. خدا خود آقا وقتی که منصب ولایت فقیه اومد خود این منصب یک حکم وضعی است وقتی حکم وضعی شد تکالیفی رو دوش ایشون میاد تکالیفی هم رو دوش ما میاد این فقال اداره هست فقال اداره نوعن بر احکام وضعی است من چون دیگه اون تموم شد ببینید من دو نکتر رو فقط میگم ما هر جان میریم میگیم فقاله داره الان دیگه البته قانع شدن قدیم آنگه شما فقط میگید حرام و حلال تصدیل که مدیریت که همش حلال و حرام نیست من گفتم نه ما میگیم تو فق احکام بی بیشماره است انقدر که وضعی ما داریم ما دنبال اونا هستیم. وقتی شما میگید ویژگی های مدیران. اینا خوش همه احکام وزیر است. شرایط احراز منصب معاونت پژوهش خب این خودش که ایک وزیر است. شما, شما غیر از اینا میگید. خب اینا فقه با اینا کار دارد. اونی که شنیدید حلال و حرام بعد از اینکه که این مراحل چی شد؟ ته شد. یه خیلی دیگه من میگم که اونم هم خیلی مهم مکتب فقیها که من گفتم یکا محوراش که خیلی مهمه ایشون نگاهشون یک نگاه جهادی است و جهاد میگن یک تکلیف همگانی است و جهاد فقط نظامی نیست جهاد تمیین هست، جهاد سازندگی هست، جهاد فرزند آوری هست، جهاد هست؟ علمی هست، جهاد سیاسی هست، همش جهاد. بعد میگن این جهادها ها بعد قرارگاه ایشون دارن، یکی از شاید امتیازات ایشون با امام اینه. میگن جهاد که شد نیاز به قرارگاه داره و قرارگاه وجوب مقدمی پیدا میکنن میگم بدون قرارگاه نمیشه جهاد کرد کم بایین که در قرارگاه در جهاد نظامی ما نیاز به قرارگاه داریم تویزه ایشون مرتب قرارگاه تشکیل میدن به همی اخیرا برای احیای روستاها یه خودش یک نگاه فقیست به قضیه افتی که من مبنام این شد که جهاد هست ما در حال جهادیم جهاد در یه دشمنی روبروشه مجاهد با اون می جنگه بعد ایشون گفتن این جهاد چند جا تصریح کردن ما امام جمعه بودیم خدمتشون رسیدیم اونکه ما امام جمعه پردیسان بودن گفتن بعد ایشون گفتن که نماز جمعه قرارگاه هست من گفتم نگران نشید وحشت نکنید همینجوری قرارگاه است یعنی شبیه قرارگاه نظامی است چون ما در حال جنگیم دشمن داره دائما به ایمان ما و تقوای ما حمله میکنه یه قرارگاه میخواد که چیکار کنه تشکیل بشه به نام جهادش هم گفتن جهاد تبیین هستش این جهاد طبیین و اون موقع گفتن پس ببینین این یه ای دیدگاه جهاد واجبان شرعن اتفاقه ما به شکل عوامی و سنتی جز فروه دین ما جهاد هستش و جهاد همه مخلفاتش هم با خودش داره دشمن داره قروتان الله عبادته و برای اینکه یک نظامی پیش بره ما جز مدیریت جهادی کار نمیتونم کنیم این مدیریت جهادی جز مبانی فقهال اداره هست یعنی در ما در یک مجتهد در حال جهاده جود جهاد اجتهاد حالا جهاد سازندگی قرارگاه خاتم الانبیاء جهاد سایبری قرارگاه خاتم الانبیاء جهاد احیاه رستاها قرارگاه پیشرفت و و نه جهاد طبیعی مثلا قرارگاه جمعه، این قرارگاه ها جزء مؤلفای های اصلی حکومتداریشونه اینا مقدمه هستند وسیله هستند برای چی؟ برای اینکه اون جهاد به بشه. جهاد مؤثر بشه. دقت کنید این قرارگاه و این جهاد جهاد چون مفروضه که واجبه پس مقدمه هم واجب میشه بعد این قرارگاه ها تشکیل بشند من آمار قرارگاه ها رو نوشته بودم آمار جهادها ها هم نوشته بودم دیگه فرصت نیست حالا این شما سوالاتی دارید بپرسید قبل از اینکه که به نماز جامعه بریم من فکر میکنم این باید قدری زودتر شروع می شد حدا دو ساعت وقت می که حالا باز در خدمت هستیم بایداره دوستانه در یکی ساعت شد یه برده کرده که, که با ها و با جهاد هست این جنده هست قربتای هست شما گفتن جهاد مثلا یه سال نوت رو ایشون گذاشتن جهاد اقتصادی هر این جهاد اقتصادی بعد ایشون تو حرم رضوی توضیح دادن ایشون جالبه که هر وقت نامگذاری میکنن فرداش حرم هستن حرم رزوی بعد اونجا خدمت همام روزا گذارش میدن مثلا بعد میگفتن جهاد بدون دشمن کسا معنا نداره که مثل جهاد نظامی که چی داره؟ دشمن داره جهاد اقتصادی دشمنش کیه؟ میخواد شما اقتصادتون رونق نگیره معیشت مردم همیشه چی باشه تنگی باشه دشمن دیگه دلار رو الان او اوورد کرد به قول آقایون حتی یه مقدارش فرافکنی است یه مقدارش هم واقعی است دلار این این عملیات که انجام میده شما تو جنگ بودید حاج غاسم که بوده مثلا می‌بینید که همهش در جنگ و به ترام بگو ما یه لحظه شما غافل نیستیم که دشمنی هست هیدر نقشه میکشه شما جلو شد. در جهاد اقتصادی همینطوره در جهاد ترمیین هم همینطوره گفتن که دشمن اینجا دیگه به اقتصاد کار نداره دشمن میاد شبه درست میکنه گه اصلا کی گفت شما انقلاب کنید شاه که بهتر بود تطهیر میگوند بچه ها که اون موار ندیدن اصلا مشروعیت این انقلاب به چیه اصلا خود امام هست یا نیست فرض کنید از اینا میگن الان جوانان ما رو دارن زبه بگرن یو زبه همون بعد این جهاد طبیعی ایشون گفتن واجب فوری است. نگاه فقهیه. ادبیات فتقایی کمتن، وجوب فوری دارد. ضروری است. خب جهاد تربیت، بعد جهاد هم بدون قرارگاه نمیشه. که مثلا این قرارگاه نماز نو... شده. مثلا خاتم الاوسیا چه کار میکنه خاتم الاوسیا. که آقای عزیز جعفری هستنست. هم تلویزیون، هم رادیو، هم سینما سه دارن کار میکنن. اوجو برنامههایی که دارن ابعاد هنری دارن کار میکنن. خاتم الان بیا نه، خاتم الان بیا پر درست میکنه، ساختمون درست میکنه، صد درست میکنه، میگن جهاد، جهاد سازندگی. این نگاه جهادی تو ارتش هم آقا داشتن خودکفایی من یادم هست دوتا شما الان همین خودکفایی باعث شده که ما یه نگاه فقهی باعث شده که ما به مشکه های هایپرسونیک برسیم یا این نگاه که سازش و مقاومت کدوم بردیگری ترجیح دارند. حالا یه جنایت تو این کشور هست به آقا فشار میارن نظام فشار بیارن که ما عهد تعامل سازنده باید باشیم این جنگ افروزی و اینا خب فقیه میاد میگه که بین این دوتا کدومش مفسده داره کدومش مسلحت داره بعد آقای روز گفتن که ببینید هزینه سازش بیشتر از هزینه مقاومته یعنی پول الان عربستان برای خرید امنیت خیلی هزینه میکنه هرچی شیر داره دوشیدن هنوز امنیت نداره ما بدون اینکه بخریم خودمون تولید کردیم خب در اثر مقاومت. هم سلاحاشو تولید کردیم شهرکهای های شهر بوشکی، چقدر زیر زمین چه چهونه این ممکنه یکی شما به چه علت تمام پول مردم رو صرف موشک میکنید صرف چی میکنید صرف بشار اسد میکنید خب این نگاه فقیفیست که مفسده و مثلحه رو با هم چیکار میکنند میسنجن میگن حفظ نظام به اینه که ما چون حفظ نظام از اوجه واجباته این با مقاومت هماهنگه. حس مقاومت واجب است، برای اینکه حفظ نظام واجب میشه. اگه سازش کنید، سازش کارا دارید می‌بینید این نگاه فقهی تو همه چی توسط یک نظام بلایت فقیه وجود داره. این از این جهت بود. و ما اعتقاد این که آقا بار گفتن گفتن جهاد واجبه حتی گفتن فوری هم هست مثلا. تازه ایشون میگفتن جهاد نرم خیلی وجوبش بیشتر از جهاد سرد و سخته چرا چون تو این به ما پذیرتریم وقتی جهاد میشه جنگ تحمیلی همه هیجان پیدا میکنن میجنگن مخالفین داخلی نفس نمیتونن بگیشن چون جنگ قلقل میشن ولی در جنگ نرم اونا تازه به رو میان به میشن فعال میشن و شما با اونا رو نابود کنید پس نگاه جهادی به نظام و انقلاب که ما دوشنم و پیشرفت این یک نگاه است چون جهاد استلاح یک اصطلاح عبادی رو به کار میبرن جهاد درست بعد میگه خب این جهاد یک لحاظه می‌داره. میگه میشه جهاد تشبیه میکنن گن که جهاد در جهاد نظامی قرارگاه نیاز است درست گو حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد حالا وقتی شما جهادی شدید باید دیگه واقعا جهادی عمل کنید و قرارگاه, و قرارگاه ها وجوب مقدمی پیدا می برای جهاد واجب اون جهاده که وجوبش نفسی است تازه اونم که وجوب نفسی عینی تعینی است این تازه میره ما یه مقدمه می برای حفظ نظام حفظ نظام هست که منبیات انبیا و ائمه رو این حفظ نظام حفظ قدرت نیست حفظ یک رکن شدیدی هست که همه اعتقاد بشت داشتن حالا شده یه رهبر هوشیاری میخواد که درست نده این نگاه هم نگاه فقهی و دقیقی است که وجود داره خب سوال دیگه هم اگه هست گذشته نه الان چند ساعت 12 نیم هست حال ما سرور ما کررمون آجای نیمی هم فرمده این که بیشتر از آقا بگید ما از اما اول تازه این آهاش معدماتی میشد یه فرصتی باید باشه که این فتاهایی که میدن احکامی که میکنند، میکنن تمام نگاه یک فقیه هست یعنی اینطور نیست که ایشون وقتی که حکومت میکنه از فقه جدا میشه فقه فقط این نبود که ایشون رو کار بیاره ایشون که اومد رو کار باید با همون نگاه کشور را اداره بکنه هر دستوری میده هر تصمیم میگیره و هر کسی رو نست میکنه مثلا میگه توی انتخابات این آقا صلب صلاحیت این نگاه فکری هست بر اساس مجد باید باشه نه اینکه مثلا من برای اینکه قدرت حفظ کنم میگم این آقا نباشه اون آقا نباشه. تمام ازلها ها، تمام صلب صلاحیت ها و تمام برگزاری انتخابات ها و همه اینها قوانینی که تو این کشور وضع میشه بخواد اجرایی بشه مشروع بشه همش اش نگاه های فقهیست میشه مکتب فقهی رو مکتب فقهیشون رو یک مکتب جهادی مدیریت چون فقل اداره رو ما داریم میگیم اداره جهادی میشه اداره جهادی خودش سیستم فقهیست مدیریتی که به نحوه جهادی است و جهادی شد خودش یک منشوری و خودش داره که ایشون این رو مراعات میکنن حالا شاءالله از بعد ادبیات این مرور کنید اینو این نکته خیلی دقت دارن فقيه مجاهد میدونم قبل از انقلاب همش به امام خمینی میگفتن مجاهد خب مجاهد یعنی چی یعنی در حال من در حال جهاد هست پروردگارا، را تماشد ما به این رحبرمون اتحاد داریم او رو نایب امام هست میدونیم جانشین شایسته امام خمینی میدونیم که هر دو امام رو یه امام اصلی نسل کرده امام بعدی که ما که دوست داریم همینشون باشن باز اینا برن او هست این نظام از اون فقه سرمنشم میگیره و مثل درختی تازه میوه داده و می داشت ادامه داره خدا ما رو در این پاییمندی پایداری، تاباوری نسبت به این نظام آسمانی نظام فقهی که موود همه مصلحان تاریخ بوده و همیات تاریخ بوده ما رو در این زمینه موفق بدار نظاممون رو تا به تکامل رسیدنش کامل شدنش که نظام مهدوی تبدیل میشه ما رو در این نظام صاحب نقش و ثواب قرار بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته